بسم الله والحمد لله على رسول الله بعد درس یکم از کتاب قواعد اربعه چهار و این چهار قاعده هم دقیقات قاعده های مهم است مطالب به توحید و این قاعده را البته شیخ خود ذکر کرده نیست از فکر خود یا ساخت گرفته شده گی است قاعده های مهمی او به مهم است برای انسان برای شناختن توحید او که شرک است الله برای او پیامبر ها فرستاد به خاطر توحید به خاطر توحید کتاب ها نازل کرد و شلاقتن شرک که شرک چیست زیرا زیادی ها بسیاری ها نمیدانند شرک چی هست چی جایی که بدانند که توحید چیست نه توحید را میشناسند نه شرک را بنا به خاطر همین این کتاب ما این چهار قاعده در حقیقت خیلی قاعده های مهم است برای فهمانیدنی مشرکا و عباد القبور توحید را و عکس او و زد او کی شرک است برای فهمنده به حد مهم ما کی مشرکای مکه اونقدر مشرک سرسخت بودن لیکن ربوبیت الله را قبول داشتند تنها الله را خالق و روزیق می‌دانیستند و چرا لات را ما مپ... برای چی و او از همین عبادت حسین و جیلانی چی فردا را مهم این چهار قاعده شیخ محمد ذکر می‌کردگی قويدوهو مهمس بشك خو اول قال المؤلف رحمه الله اول شيخ محمد يكد دعوه نيكه ميكنا بروي خونان دا بروي شونوان دي ان كتاب مؤلف مقاد اسأل الله الكريم رب العرش العظيم اي يتولاك في الدنيا والآخرة و اي يجعلك مباركا اينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكرا، وإذا بتلي صبرا، وإذا أذنب استغفرا، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. إن خلي سخاني مهمست، قريب تشدع السخان هو علماء بن القيم، كي مجد مقاد الله الكريم سؤال مكنا ميبورسا الله كي كريمست؟ رب العرش العظیم پروردگار عرش بزرگ که ای تولیه که تو را صاحبی کنه در دنیا و در آخرت تولیه به معنای دوست داشتن و نصرت دادن و حفظ کردن در دنیا و در آخرت تو را نصرت و حفظ کنه و ایجعالک مبارکن این ما کنته و تو را مبارک گردانه در کجایی که باشی تو خیلی دعای در حقیقت دعای بزرگ است از امام مجدید رحمه الله این دعا کردن دلالت بکنه به مهربانی شیخ محمد نسبت خواننده کتابهایش و همچنین حارس بودنی او به حارس بودنی او به هدایت یافتنی مردم و موفق شدنی مردم اول فایده میتیا برای فهماندن علم هم علم میتیا و هم دعا میکنه برای خاننده و طلب طالب علم و یجعلک مبارکان اینما کنتا تر مبارک گردونه در کجایی کی باشی در حقیقت انسان مبارک خیلی انسان خوب است که الله اگر انسان مبارک کرا همه عمرش و فایده هست همه عمرش در عمل انسان برکت در زن و فرزند انسان به حد مهم است درازه عمر یا بسیاری مال یا بسیاری زن و فرزند هیچ اعتباری نداره اگر رفت با برکت نباشه و انسان هم همین خیل ملیان ها میلیون ها انسان هستند و گذشتن زندگی کردن اما وقتی که با برکت نباشه هیچ خوبی و هیچ نفع فایده نمیداره و این قمالیف نگد یا ایجعله که از الله سوال میکنم تذرور میکنم التجا میکنم که تو را مبارک گردونه در کجای کی باشی انسان مبارک همو انسانی هست که در همه جا به امر الله و به رسول او عمل میکنه و به دیگرها خوبی ها میرسونه انسان مبارک چه خل انسان میگن هر انسانی را میگن که فایده هم به خود فایده میرسونه و هم به دیگرها مثلا اگر رفت و جاهل را دید او را تعلیم میتیه گناه را دید معصیت را دید او را ماند میکنه خطا را او را اصلاح میکنه و نمیفهمیدگی را دید او را میفهمونه و مردومه به واجبات و به مستحبات امر میکنه اینو میگن انسان مبارک به خاطر همین خیلی برای انسان مهم است که انسانی باید با برکت باشه برکتی در انسان در همین است با طالب علم مبارک هم طالب هست که علم را نشر میکنه شیخ مبارک همو شیخی است که توحید و سنت را برای ما طالبهاش میفهمونه کتابهای سلف های اهل علم را برای مردم نشر میکنه و میرسونه و مبارک بودن به حد مهم است و باید انسان کوشش کنه انسان مبارک شود خب مبارکی چی بوده است یعنی اعمال صالح را انجام دادن صالح بودن و اصلاح کردن غیر انسانی با برکت برکت در چه چی چیزا مهم است در همه چیز برکت این نو... تبارک یکی از نو... تبارک الذی بیده الملک بزرگ است مبارک است یعنی برکت دهنده است برکت تنها در دست الله است و خاطر همین مؤلف از الله طلب میکنه کی الله تبار مبارک گردونه زیرا برکت دهنده تنها الله است خب برکت در چی چی مهم است اول در عمر انسان و در علم انسان علم به برکت علم نافع علم قران و سنت که آدم رو نزدیک را و از جنت نزدیک کنه از دوزخ دور کنه برکت در رزق در مال در فرزند در زن در عمل عمل به برکت عمل خیلی کمم هم باشه کی به برکت باشه اگر خیلی مال هم کم هم باشه эки баракат боша хеле фоиданок аст ху ва иджалака мимман иза уътия шакра ва бале фатхими гад аз аллоҳ талаб мекунад ки тора аз ҷумлаи касоне бугардона ки вақте ки чизи дода шава шукр куна яъни неъматиро аллоҳ барош дод шукр куна ба аксш куфри неъмат наварда неъматро ношурги ношукрӣ накуна ва و اذ تاذن ربكم لان شكرتم لازيدنكم الله اعلان کردگی هست و هنگامی که الله اعلان کرد پروردگار شما که این لا این اگر شما شکر کنه زیاد بکنم نعمتم را برای شما به شکر شکر سبب زیاد شوی رزق هست شکر سبب زیاد تنی نعمت هست هرکی کی نعمت زیاد که بخواهد پس باید الله را شکر شکر کنه عکسش چی عکسش کوفران نعمت نو شکری نعمت سبب نعبود شوی نعمت بیشه و هر که بخواهد جلب کنه نعمتها را به دست بیاره و نخود نزدیک کنه باید همیشه شاکری الله باشه شکری به زبان که ال الحمدلله بیان باشه دیوم شکری در عمل که این عمل را در تنها در چه در رزاگی الله صرف کنه بنابار برای مؤمن واجیب است که الله را شکر بگوید در وقت نعمتها александры'ы old者 ,az а cima ,az шоконли果,ца сана, н Государство ,а н recessed древnekдіifeет істет оля mismos бәд Take racее исти м Designer исти 예 처бан бәд, по urgency көні Ughaz Таулдан бәд бен не ест жахи мен кефектө, нері табына хаса- Сумато dignity білядín, білмәрі Маң seeing это. С句 сол сол сол под Artist ficar жашиurdышкую ты сам Сумhoто�, ест сол сол сол сол сол сол солдат, denn یعنی امرهای اللہ را اطاعت کنی و از های الله دور باشتی. شکر نعمت معلوم شای اجرای اوامیر و بازداشتن از نواهی و همتونی این نعمتها را در طاعت الله سبحانه وتعالی باید صرف کنن. نه اینکی در معسیت گناه. خوب این اذا اعطیه شکر یکی از صفتهای بزرگ مؤمن است که الله وقتی که نعمت تیه باید چی او را شکر کنه. و همچنین میگد و اذا به طولی و از الله طلب بکنه میگد تو از جمله بندگانی گردانه که اگر الله او را مبتلا کنه صبر کنه اذا به طولی یعنی ابتلا کرده شد امتحان کرده شد چکار کنه صبر کنه کو حتما ابتلا این کار معمولی هست یعنی حتما هست زیرا که این دنیا مبنی بر ابتلا هست و امتحان و امتحان هست و بعضيها به اب, در اب, ابتلا و امتحان اختبار در در امتحان نجاح ميشوند رستا يا رست رستگار ميشوند و بعضي ديگرها كس ميخورند بيدور براي مؤمن واجب است كي ايده بتول يا صبر واfte ki ابتلا شد به خاطري الله سبحانه و تعالی بنده رو ابتلا امتحان ميكنه نه به خاطري هلاك او بلکه به خاطري و زیادت کردن درجه های او و الله سبحانه و بنده ها را ابتلا میکنن به مصیبت ها به کارهایی که شان نیست و همچنین ابتلا میکنن ها را با کافرها از دشمن ها و منافقا به نابت احتیاج دارن چی احتیاج به دارن به صبر کردن باید صابر باشند نباید دلتنگی و بطاقتی و ناراضگی باید نکنن زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگد این اذ ان الله اذا احب قوما ابتلاهم الله وقتی قوم را دوست می‌دارد اونها را مبتلا میکنه، امتحانشان می‌کنه و من رضی فله الرضا هم امتحان چه سکون در هر چی امتحان گاهی در دین میشوه که صحیح ها بالای دین تا در بالای ایمان و تقوا تا اینکه در حقیقت بنده حقیقی هستی در ایمان و صادق هستی یا دعوایی ابتلا در دور از پدر و مادر میشوه دور از وطن ابتلا گاه میشوه در نعمت کم نعمتی ابتلا گاه در صحت و سلامتی ابتلا گاه در بفرزندی و ابتلا گاه در بماری و ابتلا گاه در از ناشینیدن کربودن یا مثلا خلاصا ابتلا خیلی زیاد است در همه چیز ایسان میتونه الله را اختبار امتحان کنه فمن رضی فلح الرضا پس هر که راضی شود به ابتلای الله پس رازیگی برای او هست یعنی الله هم از او راضی میشود و حتما به ابتلا در نجاح و کامیاب میشود ومن سخط فعليه سخط وعاركه غضب كنا در ابتلاء سرکشی سا کنه و بی توقتی کنه پس برای او از بی الله او صبر کردن و پیامبر صلی الله علیه و سلم می ثم الامثل فالامثل بزرگترین کسون از بزرگترین مردم از روی امتحان این پیامبر ها است حس... بعد اس ها. با ها مونند در ایمان و در عمل بنابر ابتلاء شدن، امتحان شدن، با کافر های سرسخت، و مثل فرعون و نمرود، ابو جهل و ابو ابو لهب و همچنین صدیقین و شهدا و صالحی بنده های مؤمن ها، بنده های مؤمن، سعه ابتلاء شدن، امتحان شدن، ابتلا شد, شد, و ابتلا اینها را به دست و, و این پیغمبر اینها امتحان کرده شدن در امتحان نجاح شدن, نجاح شدن و کامیاب شدن در امتحان اللہ سبحانه وتعالی انبیاء و صدقین و شهداء و صالحین و دنیا در حقیقت همه وقت یخیل نیست و این دنیا همه وقت جای خوشبختی و خورسندی و مثلا راحت کاری نیست الله مگرد در تلک الایام و داویل و ها بین الناس این دنیا در روزهایی هست که چرخش می زنانیم در بین مردم گاه ارزان است و گاه ارزانی و گاه قیمتی گاه صلح و آرامی و گاه جنگ و ناتنجی این دنیا همین است بدابر بنده باید نفس خود را آرام بیکنه و باید یقین کنه که این دنیا جای ابتلا و امتحان و اختبار است و باید نس رو کمک الله را انتظار شد و یقین کنه که واقibat برای متقیها و اهل تقوا پرهیزگارا هست مولا خوب معلوم اشو که ب... شیخ دچ رزی گفت اذا و اذا بتولیا صبر مؤمنه بین بین دچ هست مؤمن از این دو حالت خوری نیست یا برای اون نعمت میآید که واجب این است که شکر کنه یا اینکه نعمت میآید یعنی اینکه معقول نیست مخالفی قوایشو مخالفت نیرفت جز واجب واجب این است که النبي صلى الله عليه وسلم فتن عجبا لامر المؤمن فان الأمر كله له خير تعجب يكونو گفتن از کاری مؤمن که هميش براش خيره اين اصابته و سرا و شكر فكان خيرا له چيزي براس اورا خرسنده كننده باشه دري حالت شكر ميكنه اي براش بهتره يعني نعمت اومد دروحه شكر ميكنه اي بو براش بهتره و اين اصابته و كان خيرا له اگر افتي چيزي و معقول نشوه بعدش بيويا دري در این حالت صبر میکنه اینم براش بهتره. به دو بر مومین یکام بدی نداره. خواه در, ن... خواه در آزادی هست و خواه در زندان در دو حالت در خیر است اگر براش نعمتی بیاید اونسی که محقود شده مناصیبی حال شده در این حالت شکر میکنه الله را شکر کردنی به زبان اقرار کردن که نعمت ها تنها از جانبی الله هست و اعتراف کردنی به دیل یقین کردن که تنها رس دهنده و نعمت دهنده الله هست و عمل کردنی به جوارح که این نعمت های الله را در رازیگی الله وقتی که الله از اون میپسنده در او صرف کنه مؤمن بیداو خاطر هم هیچ بدی نداره مؤمن مسلمان در سختی ها هم براش خوبه آسانی ها و تنجی ها هم براش خوبه ولی به حال کافر که یگام چی براش خوب نیست زیرا که نعمت ها ده باشه فردای روز قیامت هم یتیده هر یتیده سوال جواب داره خب اگر افتو مصیبت بلاش بیا جزع و فزع بتوقی کنه اجر ثواب نمیگیره مؤمن نه مؤمن بنا بخاطر همین باید مؤمن این چیز را یقین کنه تو اینکه در این دنیای دار ابتلای در این دنیای جای امتحان و اختبار و اگزمین تو اینکه زندگی کرده تا در این دنیایی ای که هیچ درو دنیایی که ترازو ترازو الهی مبدی بر ایمان و تقوا نیست از جهت اینکه مثلا مؤمن ها همیشه در راحت باشن و کافرها همیشه در عذاب باشند این خللیست ذلوی دنیا را پیغمبر صلی الله علیه و اگر الله سبحانه اگر دنیا در نزد الله قدر می داشت کافرها را یک, یک مثلا یک هیچ ریسک و طعام یک آبشان هم نمیداد طعامشان هم میداد وقتی که دنیا در پیش الله قدر نداره بنابر کافرها در راحت و در کیف و صفا هستند مؤمنان و صالحین در رنج و عذاب هستند این طبیعت دنیا همین است بله بر مبنی برای این باید انسان این چیز را یقین کنه. خوب چه سیم چیزی که هست و ایده اذب استغفره وقتی که میگوید از الله سوال میکنم، طلب میکنم که تورا از جمله کسانی بگرداند که وقتی گناه که کرد استغفار طلب کنه. این هم به حد مهم است که بنده مومن وقتی که گناه کرد واجب است که در حالت استغفار کنه و طوبه کنه بسوی الله باز بگرده چرا زروکی وصف مؤمن وصف حقیقی است که اگر خطا گناه گناهی کرد باید رب خود پروردگار خود را فراموش نکنه اما آدم بدبخت کسی است که گناه میکنه و توبه نمیکنه باز زیاد گناه میکنه والعیاذ بالله اما شخص مؤمن کسی است که وقتی که گناه از او صادر شد واقع شد زود توبه میکنه رو به الله میورد چون که الله سبحانه و تعالی میگاد والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ومؤمنه كسون استنکی اذا فعلوا فاحشه واختفوا كوري فاحشه كوري گناح های رکن یا خود را ظلم کنن و گناه کردند الله را به یاد می آورند بنابر این نشانه مؤمن است که انسان گناه پی کرد زب پشیمان شوه زوت خوف و عقاب الله در دلش داخل شوه و پشیمان شوه الله کنه إن يشاره المؤمنون الى الله مقت الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الله رب ياد ميارن و الله را ياد بكنن و استغفروا لذنوبهم طلب مغفرات مكنن براي گناههاي كردگشان الله مقت و من يغفر الذنوب الله و كسي نمبخشت گناه الله و في الله سبحانه و ثم يتوبون من قريب يعني همون بندهاي مؤمن كسانى توبه میکنن به نزدیکی یعنی زود توبه میکنن یعنی هر وقتی که گناه کردن استغفار میکنن کسی معصوم و به گناه نیست لیکن مهم همین است که انسان وقتی که گناه کی کرد باید بسوی الله سبحانه وتعالی بر بگرده و توبه کنه و رجوع کنه خوب این فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعاده ولی فوقت که همین سه چیز نشانه علامت خوشبختی هست سی چیز سی وقتی که نعمت داده شد شکر کنه وقتی ابتلا و امتحان شد صبر کنه و اگر رفت و گناه کرد کر استغفار کنه در حقیقت خیلی سخانهای خیلی زیبا گفته است از علامه ابن قیم نقل کرده است که این سه وقتی چیزی داده شد شکر کنه و مبتلا شد صبر کنه گناه و مخفیرت گناه کرد توبه کنه رجاع کنه این نشانه سعادتمندی و خوشبختی هست عکسش نشانه بدبختی вакти гунох кына истихбар кына бепарвоги кына вакти дан неямти болсо шукр кына вакти маасият кыл таوبه кына ва вакти имтихан болса сабр кына хуб маалй бад аз ин дуои хеле муборак бад мегд илм аршадака аллоху ли тоататихи ан ал-ханифия миллат و باید اهمیتیه زیرا دنیا مبدی بر توحید هست. آخیرت هم نجاح سعادتمندی دنیا و آخیرت این متعلق به توحید هست. اعلم ارشده کالله لطاعته بدون مگد الله تو راه راه نمویی کنه وقتی ارشده راه کرده. اللہ تو راه کنه به طاعت و عبادتش ان الحنیفیت این که دین حنیف ملت ابراهیم دین ابراهیم دین حنیف هست حنیف از کلمه حنیف یعنی مل کننده ب ругадананда аз ширк яъни мувахид ханиф аз ханафгирдигист яъни майл кунанда майкуранда ба чи ба суи тавхид ругадананда аз чи аз ширк ханиф мирак иброхим ханиф яъни мувахид ва ругадананда аз ширк ва ру оранда ба суи тавхид инки дини миллати در حال بدلت خالص کننده برای او اعمالت را، دین اینجا مقصود اینجا اعمال هست. یعنی اعمالت را خالصانه برای الله انجام بدی تنها الله را عبادت کنی یعنی انواع عبادت از دعا و نظر و زبح و است، مثلا رکوع و سجود و سلات و سیام و, و انواع عبادتها را تنها برای الله صرف کنی و تمام اعمال را خالصانه برای انجا، ان، الله انجام بدی جایی که الله سنو تعالی مگده وما خلقت الجن والإنس خلقت الجن إلا ليعبدون وما ناوفارجن جن وإنس را مقال إنكي إبوادات كنن مرا إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون تانها بياقونغي مرا إبوادات كنن وطانها أزمن... إبوادات من را أنجوم بتيا معنى التوحيد... إبوادات دالجة توحيد است و امری الله سبحانه الله سبحانه وتعالى در سوره بینه هم گفت و الله مخلصين له الدين حنفاء و ما امروا یعنی امر کردنا شدن تنها عبادت کنن الله در حالی که اخلاص خالص برای الله اعمال هایشان را حنفا حنفا جمع برای الله سبحانه برای الله و پیدا بعض مؤلف می الله خلقك لطاعته لعبادته وقتی که دانستی که برای عبادتش برای عبادت تو انسان او یک یک وظیفه دارد وظیفش الله سبحانه و تعالی و تنها عبادت کردن این انسان همین دنیا را همه چیز دنیا را برای انسان آفریده است چیزها را بگیرد به نزدیک شوه و حقوق الله را بالای بود حق های الله کی د بالایش او را اجرا کنه یعنی تنها الله را عبادت کنه اما دنیا را همشه برای کی آفریده است برای انسان اما این بعض بعضی انسان ها عکس فرکردگان انسان خودش برای عبادت آفریده شده است بعضی ادم ها عکس کردگان به جای الله را عبادت کنن با دنیا مشور سگن در دنیایی که برای خود انسان ها فردا شده است مفید عرفت ان الله خلقک لطاعته وقتكي لعبادته فإذا عرفت يعني وقت دونستيكي الله تو را آفري دست براي عبادتاش فعلا أن العبادت لا تسمى عبادتا إلا مع التوفير فس بدون كي عبادت عبادت گفته نمي شوه مگر بچه مگر همراهي توحيد يعني عبادت كي عبادت مشوه وقتكي توحيد بوشه يغنغي وإلا آدم الله را پلسه هزار بار الله را پلسه يك شريك بياره إلا عبادت هم نمي گن إلا هم نمي جن. کما ان الصلاه لا تسمى صلاه مع الطهاره چون کی چون کی نماز نماز نماز نماز نماز صلات صلات نمیده نمیشه نماز نمیده نمیشه مگر با طهارت داشتن طهارت کی ندیشه بشه نماز صحیح نمیشه حتی بعضی ب میگه مثل همین وقت فاذا دخل الشرك في العباده فسدت وقت كي الشرك در عبادت وقتي شوت داخل شوت عبادت فاسد دخل في الطهاره مثلك بي طهارتي وقتي كي, وقت كي در طهارت داخل شوت شو ان شكننده هاي طهارت كي, كي هم عبادت هم به خود شکننده اسلام هم به خود شکننده ها داره حتى شهادتين Хачәне ки намаз бузултирин амали беторат намаз гуфта намешава мисли ҳамин ибодат ҳам ибодат гуфта намешава беки бетавҳид хуб ва иза арафта анна ширка иза халат ал ибода афсадаҳа ибодата афсадаҳа ва кек дониси ки ширк вакти ки омихташава бо бо ибодат ширк бо ибодат омихтаshid و صاحبه از از جمله چی؟ از جمله جاویدانی در دیزه خودگی ها میشود زیرا که شهادت هاین به خود شرط ها دارد به خود نواقذ دارد مثل تهارت به خود شکننده ها دارد مثل مثلا باد براورد یا خواب کرد مثلا یا پیش هاو کرد اینوی تهارت چی باطل میشود با. همچنین توحید هم همین اسلام هم همین وقتی یکی از ناقذ ها باشد توحید و اسلام باطل میشود با. مثل سب بی الله و سب بی دین یا عبادت غیر الله یا انکار کردن واجب بودن نماز یا اینکه این کار کند یا زنا را حلال بداند یا کمک و نظر کمک کردن از مرده ها نظر کردن با مرده ها و غیر این از انواع شرکی که انسان اگر هزار عبادت هم کنه هزار سال عبادت هم کنه یکی از این اعمال شرک را بعد از دانستان انجام tie این آدم از اسلام از دین خارج می شود چون که همش شکننده طهارت هم بعد از دانستن دونست که خوب تو را تمیشتنا تو را تمیشتنا وقتی که دانست یقین کرد خب عرفت ان اهم ما علی که معرفه ذلك وقتی که دانست کی صالح رو نابود می سازه عمل از بین میره وقتی که این رو دانستی چیز همین است که بشناسی شرك شنا بيداني شيناشيك رو بيشناسي ضد شرك, شرك توحيد است او رو هم بيشناسي شي شرك رو بيداني كي چيست لعله الله ايخلصك من هادي الشبكه واميد انكي الله تو را از اين شبكه از اين مثلا تاري كي تاري كي تو از اين چیزی كي تو را به هلاکت ميبره وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه وان شبكه شبكه يعني اونت زيگ موقعهبي و تاري موقعهبي و اينو یعنی چیزی که آدم رو به هلاکت می‌بره و این چیزی که آدم رو به هلاکت می‌بره او شرک آوردن به الله است. اللهی که در حق شرک گفته است ان الله لا یغفر یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمی یشاء. هر وینا الله مغفرت نمی‌کنه شرک آوردن به او رو و مغفرت می‌کنه الله فقد حرم الله عليه الجنه هر اين وقت تحقيق هر كي شريكي با الله بياره الله براي او جنت را حرام كردسه و همشي براي او حرام كردسه مغفرت و بخشيدن را ان الله لا يغفر يشرك به بخشيد نميكنه شرك آوردن بي او را ده وقت شرك خيلي خطر بزرگ است شرك را بيدونه از مسلمان ها متاسفانه نميدونه شرك چي چي جاي از او اي قبوري ها اي قبر پرستا و این مشرک های غلاطی صوفیه هایی که عبادت را برای الله غیری الله صرف میکنه از شرک خبر ندارن و ذلك بمعرفت اربع قوائده ذکر الله تعالی في كتابه و شناختن شرک مقدر بدونستان چار قاعده است که الله سبحانه تعالی او را در قرآن ذکر کرده گست بعد معلیف چار, ل... <تصفح> چار قاعده مهم را ذکر میکنه در باره, ج... باره شناختن شرک و شرکی تو مشرکین کی بودن و چی خوبی ها داشتن و ها عبو جل. عبو جل چی بدی ها داشتن و چرا مشرک شدن دانستانه به حد بسیار خیر میگه ابو جهل ابو جهل شد به خاطری چی مثلا به خاطری مثلا بت پرستی من این مساله تا ق بت پرستی نیست دربار مؤلف میگه که درباره یک 4 قاعده قاعده القائده الاولى قاعده اولش میگیریم در قاعده اول میگه ان تعلم ان الكفار الذين قاتلهم رسول الله الله علیه مقرون بان الله تعالی هو الخالق الرازق المدبر وان ذلك لا يدخلهم في الاسلام قیدا یکم همین که انسان یقین کنه بدونه کی واید بدونه که ای موحد همان کافر هایی با اونها جنگید و اونها را با اونها جنگید انها را حلال دانست حلال دانست با انها مثلا صلح نکرد و اونها نکرد در حالی که خیلی در سختی بودند پیامبر قبت با صحابه مستضعف بودند با وجودی با اونها صلح نکردند اونا چهل ادمو بودن همون مشککان کافرهایی که پیامبر صلی الله علیه و با اونها جنگید اونها بودن اقرار میکردن که الله خالق است الله رازیق است الله خالق است یعنی آفرنده اونها و آفرنده تمام دنیا هست اینو یقینا اقرار داشتن من الخالق کیست خالق و میدونسته خالق است آفرنده تنها آفرنده الله را میدونستان با یقین داشتن رازیق کیست رزق کی میت نه مثلاً لاتعزامتا یا آفرانده ما لاتعزاس اصلاً گفته گرستن المدبر و تدبیر کننده کانتراک کننده عالم و کانتراک کننده در کون تنها الله را میدونیستن که این خیلی آیا جهت خیلی کاری خوب هست اخیره خوب هست یکی هس. معلیف میگد ذالک لم يدخلهم في الاسلام و این کار انها را در اسلام داخل نکر و بعضی اگر بگرد یکیس بگرد الحمدللہ در خورد مثلا بعد نعمت ریو گه گون بعد خرسانشدنش الحمدلله بگو بگو به همین مسلمانا شد این خیلی خوش شکایت مکه خالقی رازقی تدبیر کننده کنترل کننده همچی زنده کننده و میراننده تنها الله رو میدونستم یکی با وجودی در اسلام داخل نشدن چرا زیرا اون اقرار اینها اقرار آنها اقرار توحید ربوبیت بود ربوبیت الله رو اقرار داشتن خالقی و رازقی و زنده‌کننده و کنترل کننده عالم تنها این چیز را اقرار میکردن. اما مهمتر از او این توحید اولوهیت هست. عبادت کردن تنها الله و صرف نکردن نوعی از انواع عبادت ها برای غیر الله. یعنی مشرک های مکه توحید ربوبیت را قبول داشتن. با وجود این مسلمان نشدن. با وجود این خونها و مالهای و فرزندهای اونها حرام نشد بر مسلمانها. بلکه معلوم شد که توحید ربوبیت تنها اقرار کردن تنها اقرار کردن ربوبیت برای آدم کیفاید نیست باید توحید اولوحیت هم باید همراهش باشه ربوبیتی الله را کسی انکار کرده نیست مگر بعضی از آدم ها یعنی مثلا همه امت ها قبول دارن که تنها الله خالق هست رازی قصد دینده کننده هست ای همه قبول داشت مگر بعضی ها حتی ظاهرا ظاهران انکار میکردن اما در باطین یقین داشتن که من هو آفرنده ای درم استشفرا گفت انا ربکم الاعلیک یقین داشت که او هیچ چیز نیست بلکه آفرنده و پروردگار اصلا الله سبحانه و تعالی است و همچنین مگر همون کمونیست ها اتئیست های کی و اون دهری های کی قصدن و سرکشی مثلا میگن انکار میکنن و رازقی و یگانگی الله در ربوبیتش اما و الا یهو تصرا و حتی بعضی از تویوای حتى زردوشتا هم تقریبا بعضی ها مهم ربوبیت الله را قبول دارن که تنها خالق الله و رازق الله هست خب دلیل در چیست که این چی دلیل است که مشکای مکه ابو جهل و ابو لهب ربوبیت الله را قبول داشتن ربیت یعنی خالقی و رازقی و به بعضی دعوت های بعضی جماعت, بعض جماعت ها امروز به همه اینکه مردم به با... تعلیم می که خالق کیست ظاهرا که مردم میدونه اقتصاد کیست تدبیر کننده و زنده‌کننده و میراننده بعضی جماعت مخصوص به همین در حالی که ابو جهل هیچ چیزی رو میدونست با چی دلیل اکران با چی دعوا و ایابتی دلیل به این دعوا ما عرف میگد الله را قبول داشتند این است که الله میگد قل من, من السماء والأرض ام من یملك السمع والابصار و يخرج یخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي و من یدبر فسيقولون فسیقولون الله فقل افلاتتقون و ایت سورای یونس د اللہ سبحانه وتعالیٰ میگد قل بگو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برای মুশریکای مکه می ارزقکم من الاسماء والارض کی شمور رزق میت از آسمان و از زمین از آسمان بست بعد نازل کردنی باران ها و رویان از زمین برایانیدن رستنی مثلا آدم رو از نطفه و, نطفه و آدم را می می راند و همچنین مثلا تخم را از مرغ و مرغ را از توخم یعنی پیدا کننده زنده کننده از چیزی منی که هیچ چیز نیست از او زنده پیدا میکنه آدم کودکی که آقی مثلا دست دا سپا داره و حرکت میکنه اصل منی که خیلی حرکت نمیکنه و منی خریز الحی من المیکی است که زنده را از مرده بیرون میکنه انسان رو از منی و مثلا چوجا را از تخم و یخرج المیت من الحي و بیرون میکنه مرده را از زنده یعنی yani مثلا بعد از اینکه زنده بود او مي كن را میمیرانه و من یدبر الامر و کی تدبیر میکنه کنترل میکنه کار عالم را تدبیر کننده کارها یعنی خیلی سوال های و میراننده کی از رزق دهنده و صاحب الله میگاد فسیقولون الله و زودی میگوین که الله هست کا انجام دهنده این کارها در این شک که همین نوع اعتقاد داشتن و این در کافرای مکه در شعر های جاهلیت همین چیز دیده شده است در شعر های جاهلیت همین چیز دیده شده است که همین مثلا همین چیزها را اعتراف اعتراف میکردند اقرار میکردن فك الله سبحانه وتعالى دا سوره لقمان ميگيد ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله اگر تو بيپرسي اونها را كي آفريداست آسمان ها و زمين را بزودي ميگاين يقينا ميگاين كي الله آفريداست آفرندهي زمين و آسمان و هر اگر سوالشون تي كي قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظيم ميگو كيس پروردگار آسمان و پروردگار عرش بزرگ سیقولون علی الله، زو بزو زودی میگن که این ازانی الله سبحانه تعالی هست پروردگار آسمان و زمین و آسمان و های افغان و زمین و دیگر چیز ها و حلو از این آیت های مبارکه که مشرک های مکه این چیز را اعتراف کردن و به این چیز اقرار کردن و به این یقین داشتن و این یقین کردن و اعتراف کردن آنها آنها را مسلمان نساخت بخاطر چی؟ بقاتل که شرکی در الوهیت داشتن نوع از انواع عبادت را برای غیر الله صرف کردند که در قاعده دیوم میوله که باز همون چرا عبادت غیر الله رو کردن بخاطری که اون خالق هستن رازی هستن بخاطری که به اونها به بخ... این معبودهاشون راضی کنن و اونها را معبودهاشون دوزخ جنت و دو دوزخ میبره این خلل ندید قاعده دیوم ده میخوان که تنها عبادت کردن بخاطر شفاعت طلب کردن است یعنی مشرک های مکه هیچگاه اعتقاد نداشتند که لا تو عجره و عزا اونها را آفرید است و بنا بر خاطر همین باید مسلمان شک را بداند که شرک تنها عبادت بود نیست شرک این نیست که مثلا انسان بگوید که خالق و نیست نه بلکه شرک این است که نوعی از انواع عبادت، ذبح، نظر، دعا، استعانت، یاردان طلب کردن، کمک گرفتن همین را برای غیر الله صرف کنه در حال چیزی که قادر غیر الله کسی قدرت ندارد در یاردام دادن و کمک کردن و اینو ری حالت انسان می شه مشرک و از دین خارج میشه خب قاعده یکم همین که مشرکای مکه اقرار داشتن توحیدی ربوبیت را و مخالف بودن یدت داشتن در توحید یعنی توحید الوهیت و این اقرار ربوبیت انسان را مسلمان نمی‌کنه و انسان را خونش را حرام نمی‌کنه و انسان داخل اسلام داخل نمی‌شه انسان با توحید ربوبیت بلکه از این توحید چی است تروبو بیات با اولوهیت فایده میکنه یعنی اگر رفتو تنها الله را خالق و رازیق دانستند واجب که تنها الله را عبادت کنند ان شاء الله و بقمنده را در درس اومد